قسمون که مقالی توقع من الله و حوه هست معنای دقیق توکل چیست و چگونه توکل کنیم که خدا و کند ما کنند از واجه ها مثل رضا توکر و امثال اینا بی اختیار بی به اختیار به طور تام به دست نمیاد زمینه شما میتونیم بچینیم ولی باید نازل بشه از طرف خدا باید مقام توکل ایجاد بشه در قلب انسان اونی که ما وظیفمون هست مطیع خدا بودن توکل از چیزایی که به مطیعین داده میشه نه اینکه انسان در هر حالی باشه اراده کنه توکل پیدا کنه راهش همین هست